والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الأرض يرثها عبادي الصالحون صدق الله العظيم خود لازم میدونم قبل از اینکه صحبت هام رو شروع بکنم خدمت تک تک سروران عزیز علمای بزرگوار فضلای بزرگوار مسئولین لشکری و کشوری حاضران در این جمع دانشمندان مختگان بزرگوار و تمام دستندرکارانی که در برگزاری این همایش نقش داشتن عرض سلام و ادب و احترام داشته باشم و از همه اونها تشکر و قدردانی بنمایم. موضوع صحبت بنده همینطور که اعلام شد بحث وضعیت فعلی جهان اسلام و چشمنداز آیندهش هست ما اگر نگاه بکنیم به وضعیت فعلی جهان اسلام و بسیاری از اخبارهایی که ما روزانه از کانالهای محوارهی خبرگزاری ها اعلام میشه نگاه بکنیم یک وضعیت مایوس کننده و ناامید کننده است یک انسان وقتی که این وضعیت را میبیند به ذهنش میاد که جهان اسلام و مسلمون ها در یک مسیر قهقرائی دارن حرکت میکنن و ما روز به روز در حال پسرفس هستیم امیدی به آینده وجود ندارد و دیگران همواره بر ما سلطه دارند و ما هیچ امیدی برای بهبود این وضعیت نداریم صحبت که من خدمت سروران عزیز میخواستم ارائه بدم در واقع ما در عصر حاضر به تعبیری که از علما نیازه به مبشرات داریم، نیازه به وعده‌های نویدبخش، اما نه وعده‌های نویدبخشی نف... که هیچ پشت‌وانی نداشته باشد، بلکه نه ن... نوید... وعده‌های نویدبخشی که پشت‌وانی از قرآن از سنت و از واقعی فعلی ما مسلمون ها هم در اون باشه. من شواهدی رو خدمت شما ذکر می کنم مبنی بر اینکه جهان اسلام و ما مسلمون ها در عصر حاضر نه فقط در حال پسرف نیستیم بلکه مسلمون ها در جاجای عالم اسلامی و در جهان اسلام روز به روز دارند بهتر از دیروز عمل میکنند و آینده به تعبیر اون بزرگواری که فربود آینده در قلمرو اسلام است آینده قطعا در قلمرو این دین هست و به تعبیر یکی از دشمنان اسلام و یکی از منتقدان این دین به نام برنارد لویس میگه که تا پایان قرن 21 اروپا مسلمان خواهد شد من در اینجا شواهد رو ذکر می ابتدا از قرآن بعد از سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد شواهدی از واقعی کنونی ما مسلمون ها ذکر می و اگر فرصت شد شواهدیم از دشمنان و از اظهارات دشمنان اسلام ذکر می کنم تا ببینیم ما واقعا در حال پیشرفت هستیم و الحمدلله پسرفتی نداریم همه این اتفاقات هم که در جهان اسلام داره میفته، اتفاقات ناگواری که جنگ های داخلی که در کشورهای جهان اسلام میافته به عقیده من در واقع یک نوع هزینه پیروزی است. شما می بینید مداد وقتی که می میخوام تیزش بکنید باید تراشش، باید بخشی از خودش رو از دست بده تا تیز بشه. این هزینه ای است که برای تیز شدن مداد نیاز داره. ما هم برای تیز و برای پیروزی به هزینه نیاز داریم و اینا حزینه است که ما در جهان اسلام داریم پرداخت میکنیم. اما از شواهد قرآنی شروع می قرآن کریم همینطور که می دین اسلام نیست پویا آمده است برای جهانیان آمده است برای پویایی و برای مندگاری آمده است تا روز قیامت به عنوان دین خاتم و دین پایانبخش در این جهان بماند بهمين خاطر يكي از خطاب هاي قدابند متعالب الرسول مكرم اسلامي ناس وما ارسلناك إلا رحمة للعالمين للعالمين لا فقط براي عرب للعالمين تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا براي عالمين اسلام براي عالمين عمده وشون براي عالمين عمده هست ان دين متعلق بآالمين هست متعلق بيقوم خاصي نیست. متعلق به عرب نیست متعلق به فارس نیست متعلق به بلوچ نیست متعلق به عالمین هست و به همین خاطر خداوند متعال در قرآن کریم در آخر سوره محمد صلی الله علیه و آله وقتی که مخاطبان زمان نزول قرآن رو خطاب میکنه جوری میفرماید انت تولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا اگر شما روی گردان بشوید از دین خداوند قوم دیگری را جایگزین شما میکند قوم دیگری را می آورد و اونها مانند شما نیستند یعنی پیروزی این دین وابسته به قوم نیست وابسته به عرب نیست وابسته به عجم نیست وابسته به انسانیت است و تا زمانی که انسانیت وجود دارد این دین هم وجود خواهد داشت اگر ما از نصرت این دین کوتاهی کردیم خداوند بندگان دیگری را در شرق در غرب در جای دیگری دارد که اونها را مسخر بکند برای مسرط این دین این شک نکنید فقط اون چیزی که برای ما باقی میماند این است که آیا ما شرف حضور در رکا بشنید افرادی را داریم یا نداریم در قرآن کریم آیات زیادی هست بر این که آینده از آن این دین هست از جمله آیاتی که خداوند متعال اشاره میکند که آینده از آن این دین است همین آیه است که در اول ارا یظم تلاوت کردند ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذکر ان الارض يرثها عباديا الصالحون ما در زبور بعد از ذکر نوشته ایم یاد کرده ایم که زمین را بندگان صالح به ارث میبرند ان الارض يرثها عبادي الصالحون زمین را بندگان صالح من به ارث میبرند و در واقع بندگان صالح خداوند و اون کسانی که پرچمداران قرآن و سنتن اونهایی هستند که زمین را به ارث میبرند و دین اسلام را اون طوری که رسول الله صلی الله علیه و پیشبینی پیش بینی کرده این دین را جهانیش میکنند چون میدانیم در زمان رسول الله صلی اللہ علیه و علیه این دین جهانی نشده و این دین باید زمانی جهانی بشود آیه دیگری داریم در سوره نور وبعد الله الذين آمنوا منكم بعمل الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا من بعد خوفهم أمنا يعبدون الله يشريكونه بشيء خدابن بكثامك إيمانا وردا وعمل صالح أنجام ذلك وعد دادس إن بعدي خداس فإن الله لا يخلف الميات خداب بعدي خدش اصلا خلاف وعده نمیکنه و برخلاف اون رفتار نمیکنه وعده داده است که اونها را در زمین جانشین میکند خلیفه میکند حاکم میکند اونطور که پیشینیان را حاکم کرده است و خلیفه کرده است و دینی که مورد رضایت اوست را برای اونها برمیگزیند ولیبدلن لهم دینهم الذی ارتضا هم دینی که خدا برای اونها پسندیده است این دین رو جایگزین میکند چون دین دین اسلام است، دین پایان بخش است همه این آیات که در قرآن کریم داریم دال بر این است که این رسالت رسالت خاتم رسالت اسلام رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم است تا برای یک برهی از زمان یا برای یک قوم خاصی چون قوم میرود امت یک امت عمر دارد لکل امته اجل فاذا فا جاء اجلهم لا يستخرون و لا يستقدمون اما اون چیزی که میماند دین است و دین وابسته به امت نیست بلکه حافظ این دین خداوند هست که میماند خداوند اجل ندارد مانند ما ما هستیم که اجل داریم و میرویم اما این دین تا روز قیامت میماند این شواهد قرآنی چون من کم دارم خیلی سریع رد میشن اما در شواهد نبوی در احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم ما شواهد داریم مبنی بر این که این دین جهانی می شود از جمله حدیثی داریم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که می فرماید لنبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار ولا یترك الله بیتا من وبر ولا مدر الا ادخله هذا الدين بعز عزیز او بذل ذلیل این دین تا می میرسد که شب و روز میرسد یعنی چی یعنی این دین جهانی میشود این دین یک روزی تا هر جا شب و روز اونجا میرسد می گسترش پیدا میکنه و خداوند هیچ خانه‌ای از تشم شطر و از گل را رها نمیکند یعنی خانه‌ی شهری و روستایی خانه‌ی شهری که از خشت میسازند و خانه روستایی که از پشت می سازند از چادر می سازند یعنی هیچ شهر و روستایی نخواهد بود در دنیا الا ادخله هاد الدین مگر این که خداوند این دین را واردش میکنه. یعنی روزی میاد که این دین جهانی می شود و اگر این جهانی نشود در واقع اون وعده‌ای که خداوند فرموده و ما ارسلنا که الا رحمت للعالمین عملی نمی شود پس این دین یک روزی جهانی می شود با در حدیثی داریم از پیامبر صلی الله علیه و سلم که این گفتار گفتار صادق المصدوق از گوهر رسول الله است می فرماید که از رسول الله سوال کردند ای المدینتین تفتح اولا قسطنطینیه ام روما کدوم دو شهر اول فتح می شود قسطنطینیه که استانبول خودمون باشه یا روما یعنی اروپا فرمود مدینت هرقل تفتح اولا شهر هرقل یعنی شهر هراکیلیوس شهر استانبول یا قسطنطنی اول فتح می شود و شما می دانید که بین این وعده نبوی تا زمان تحققش نزدیک به 800 سال طول کشید رسول الله صلی الله علیه وسلم این وعده را این پیشگویی را در قرن هفتم میلادی انجام داد و این وعده در قرن پانزدهم میلادی در سال 1453 به دست توانای سلطان محمد فاتح انجام شد و و این دین قسطنطنی فرد شد اما روم هنوز فرد نشده روم هنوز فرد نشده چرا روم به خاطر اینکه رومی که پیامبر صلی الله علیه و سلم مد نظرشون بود در واقع اروپا بود و وقتی که وعده رسول الله صلی الله علیه و سلم سال تور میکشه تحقق پیدا میکنه لذا روزی میاد که روما که همون اروپا باشه و در واقع کل جهان یک روزی به تسخیر اسلام در میاد و اسلام در اونجا جهانی می شود چرا چون رسول الله گفته است چون صادق المستو گفته است و وعده او و حرف او به خلاف نمی رود اما شواهد کنونی. ببینید از دان ما وقتی که می خواهیم آینده را پیش بینی بکنیم معمولاً نگاهی می به گذشته نگاهی می به گذشته و بو قایسته می کنیم با حال و در نتیجه نگاه به گذشته و مقایسه با حال پیش بینی می که آینده چی میشه مثلا اگر شما می خوید وضعیت یک دانش آموز رو بفهمید که در آینده چه میشه گذشته شو نگاه می کنید با حالش مقایسه می و نتیجه گیری می کنید که این دانش آموز در حال پیش یا در حال پس رفت ما بر اساس یک سری دلایلی که داریم پیش بینی می که اسلام در دنیای اسلام و در دنیای کنونی در حال پیشرفته اگر ما نگاه بکنیم به داخل جهان اسلام به درون جهان اسلام در, همین منطق، در همون ایران خودمون تا پنجاه سال پیش ما چنین اجتماعی نداشتیم ما چنین ای نداشتیم ما چنین تشکیلاتی نداشتیم ما این همه نمازگذار نداشتیم در کل ایران در کل کشورهای عربی عکس هست از دانشگاه قاهره مال دهه پنجاه میلادی در دهه پنجاه میلادی معمولاً هر سال جلو دانشگاه قاهره دانشجوها با اساتید عکس میگیرن در اونجا عکس هایی که هست دختر و پسر مختلطن دخترها تقریباً اغلب اونها به در همونجا در جلو دانشگاه قاغره در سال 2000 دو دوباره عکس گرفته شده دانشجویان دختر و پسر با استاداشون در جلو سردار دانشگاه عکس گرفتن و اونجا میبینید که در بین این همه دانشجوی دختر شاید انگشت شماری بیهجابند بی همش بایجابند چه اتفاقی افتاده؟ اتفاقی که افتاده اینه که مسلمون ها از 50 سال پیش به این طرف دچار خود باور شدن و پنجاه سال پیش، دوچار خودباختگی بودند و الان دوچار خودباوری شدند خود را باور کردند 50 سال پیش بسیاری از زنان مسلمان حجاب را یک نوع ارتجاع میدونستانند یک نوع عقبگرد میدونستانند یک نوع کعنه پرستی میدونستانند ولی الان ما میبینیم که در کشورهای اسلامی یک زن مسلمان به خاطر حجاب حاضر از کشور خودش بره در جای دیگری درس بخونه جایی که بهش اجازه بدن حجابش رو داشته باشه و داریم کسانی که به خاطر فرار از فشار از کشوریشون میرن بیرون برای که طرف بتونه آبادان آزادانه عبادت بکنه آزادانه مسلمان باشه آزادانه نماز بخونه تا 30 سال پیش 40 سال پیش بسیاری از مساجد ما خالی بود و اگر هم پر بود مجموعه ای از افراد مسن و سالخوره در آن نماز میخوندند الان وقتی نگاه میکنین در بسیاری از مناطق جهان اسلام از جمله در ایران خودمون میبینیم که غالب تشکیل دهنده های صف جماعت جوانان هستند و جوانانی که غالبا هم تحصیل کرده هستند من خودم یادم هست زمانی یک آدم تحصیل کرده افت داشت که نماز بخونه نماز رو مال پیرمردها و انسان‌های های فرهنگ می دونستن. ولی الان یک دانشجو، یک تحصیل کرده یک دکترا یک مهندس با افتخار میاد در مساجد نماز می خونه. این یعنی ما داریم به سمتی پیشنفت میریم این در وضعیت سعیلی جهان اسلام یا مثلا در مورد روزه در مورد حج در همه اینها شما میبینید ما, ما از یک پیشرفت نوعی برخورداریم وقتی که میریم به بیرون از جهان اسلام بیرون از جهان اسلام هم وضعیتی اگر بهتری نداره ولی وضعیتی بانند جهان اسلام داره شاید بگم بیرون از جهان اسلام شاید وضعیتی بهتر از جهان اسلام هم داره از وحاظ رشد اسلام به طوری که بسیاری از دشمنان اسلام اعتراف میکنند اعتراف میکنند که اسلام سریع ترین دینی است که داره رشد میکنه هیچ دینی به سرعت اسلام الان داره رشد نمیکنه سریع ترین دینی که در دنیا داره رشد میکنه دین اسلام است اجازه بدید از زبان آمار براتون صحبت بکنم در اروپا کل اروپا وقت ارز میکنم کل اروپا که شامل روسیه هم میشه در اروپا ما چهل و چهار میلیون مسلمان داریم از این چهل و چهار میلیون مسلمان 20 میلیونش فقط در روسیه هستن نه اتحاد جماعی شورمی سابق 20 میلیون مسلمان ما فقط در روسیه داریم در ایالات چچن، انگوشیا، ابخازیا، بچگیریا، جدیره کریمه همه اینها مسلمان هستن 20 میلیون فقط در میان 141 میلیون جمعیت روسیه ما مسلمان داریم. در کل اروپا، اتحادیه اروپا، چیزی که به نام اتحادیه اروپا شناخته میشه، ما الان 20 میلیون مسلمان داریم. در طول تاریخ بشریت و در طول تاریخ اسلام سابقه نداشته اروپا 20 میلیون مسلمان داشته باشه. سابقه نداشته. فرانسه 60 میلیون جمعیت داره. 6 میلیونش مسلمانن. یعنی 10 درصد جمعیتش مسلمانن. انگلستان 58 میلیون نفر جمعیت داره از این 58 میلیون طبق آمار بی, بی سی. نه آمار خودمون طبق آمار بی یک سی 1 میلیون و 600 هزار نفر این مال سال 2006 هز. الان به دو میلیون رسیده مسلمان دارن دو میلیون مسلمان 1700 تا مسجد دارم. هزار و تا مسجد و مرکز اسلامی دارن من دیشت دوستم آمارهاشو نگاه می کردن. و واقعاً مسلمان ها در انگلستان چقدر فعالن آلمان 80 میلیون جمعیت داره از جمعیت 80 میلیونی آلمان سه میلیون مسلمان هن. که غالب این مسلمان ها از ترک های ترکیه و کشورهای عربی و کشورهای آسیایی هستن در تاریخ فرانسه در تاریخ آلمان در تاریخ انگلستان سابقه نداشت این همه مسلمان در یک جا وجود داشته باشه 40 سال پیش و پنج سال پیش در سال 1969 تعداد مسلمانان انگلستان فقط 80 هزار نفر بوده در عرض 40 سال تعداد مسلمان‌ها از 80 هزار رفته به 2 میلیون یعنی چند برابر شده یعنی 25 برابر شده حالا شما در نظر بگیرید تا سال 2050 35 سال دیگه این عدد به چه قدر می میرسه به همین خاطر الان اروپا یک جریانی درش رواج پیدا کرده به نام اسلاموفوبیا یا اسلام هراسی یعنی چه خیلی از اونها دارن هشدار میدن که اروپا در پایان قرن 21 و پایان قرن یک برای عمر اقامت خیلی دیر نیست پایان قرن 21 یعنی 85 سال دیگر برای من و شما زیاده. ولی برای یک امت 85 سال زیاد نیست در پایان قرن 21 اروپا بدون جنگ بدون خونریزی بدون فشار مسلمان میشه و علتش هم اینه علتش هم اینه که مهاجرت مسلمان ها از کشورهای جهان سوم به اروپا روز به روز داره ادامه پیدا میکنه از اون طرف در اروپا ما شاهد جریان پیری جمعیت یا کاهش جمعیت هستیم چون اروپایی‌ها زاد و ولد نمی کنن. بچه نمیارن. اونها با بچه مشکل دارن و چون زاد و ولد به خاطر شیوع بی‌بندوباری جنسی کتی تشکیل خانواده نمیده و چون خانواده تشکیل نمیشه کتی بچه نمیاره و چون بچه نمیاره جمعیت دچار پیری میشه و یه چیزیست که الان کشور ما رو هم تعدید میکنه. اینه که چون اونها جمعیتشون در حال پیر شدن هست، در حال کم شدن هست و جمعیت سریز از کشورهای اسلامی مهاجرت میکنن به کشورهای اروپایی در دراز مدت بافت جمعیتی اروپا حوض میشه. ولی اروپای ها الان خیلی تدابیر سخت ای رو برای قبول مهاجر گذاشتن چون از طرفی نمیتونن مهاجر رو نپذیرن چرا نمیتونن نپذیرن به خاطر اگر نپذیرن اقتصادشون میخوابه چون اونها جمعیت جایگزین ندارن اونها زاد و ولد نمی‌کنن جمعیت پیر بازشسته میشه جایگزین میخواد جایگزین نیست از کجا جایگزین میشه از مهاجرین مهاجرین از کجا میان خیلی عاشق از که اسلامی میان اینها در دراز مدت بافت جمعیتی کشورهای اروپایی رو عوض میکنن و این چیزیست که الان در انگلستان اتفاق افتاده، در بلژیک اتفاق افتاده، در سوئد، در دانمارک، در هلند، در آلمان، در فرانسه. اینا کشورهای عمده‌ای هستند که در واقع هدف مهاجران مسلمان هستند و این آژیر خطر را خود غربیان به صدا درآوردن و گفتن اگر اسلام با این روش ادامه بده و ما جلوش نگیریم تا پایان قرن 21 واقعاً اروپا مسلمان خواهد شد و چه کسی میداند عزیزان شاید اون کسانی که خداوند میفرماید ان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم اگر ما اسلام را نصرت ندهیم، کسان دیگری را جایگزین ما میکند شاید اونها ملت جایگزین اروپاها باشند